مطبوع میشه جان مردمان و جانوران همه به احتزاز در میاد اگر شما این آبوها رو در دشتها ببینید برای آبوها چطور بازی میکنن و به پیش باز نوروز میرن اگر ببینید که گل چطور جان خودچه باز میکنه در روی خورشید. اگر ببینید که این درختان چطور در رهگوزر نسیم میرقصند و حرکت میکنن باید بتونید که این یه فرمان عمومی خداونده برای همه جهانیان، از برای افراد بشر و این همه شادی و سرور و این همه خوشی و خوشبختی بدنبال همون فرمانیست که خداوند میخواست و میخواد که ما شاد باشیم، ما بهروزگار باشیم، ما کوشا باشیم ما دریچه بروی امیدها و آرزوها باز کنیم ما برای آینده جهان کوشش بکنیم اینا همه در پناه همی ها و همین فرمان پرولدگار حاصل میشه اصداد زبانهای باستانی اوستا، پهلوی و فارسی بزرگترین کار زندگیشون ویرایش شاهنامه فردوسی و گردآوری فرخنگ واجه های برای اولین بار در ایران در چهار جل بیاری ربانشاد احسان بهرامی، و تعلیف بیش از یک جل کتاب در زمینه های مختلف فرخنگ ایران و تشکیل بنیاد نیشابور، دانشگاهی به شیوه ایران باستان بدون متک و افتخاری. خب اینها رو گفتم به قادره که مخاطبه ما بدون با انسان بزرگی رو به رو هست و این پنجره که باز شده چه کسی داره؟ چه کسی این پنجره رو باز کرده و به کجا ما می‌خوایم نگاه کنیم؟ مخاطب... مخاطبان ما بدونن که من خاک پای ایرانیان هستیم من افتخار بزرگم اینی که خاک ایران هستم پیشتر از اون که به خاک ایران به آغوش ایران برم خود رو خاک ایران می دونم و همه کوشش و تلاشم برای ایران آینده و برای جوانان ایران هست. تیشتر سر, سر فراخ را به جنبش درآورد و از جان و آب خیزها روان برآمد و آن روان مینوبی به آسمان فراز رفت و بعد سبک چین در دامن آن افتاد و ابرها پر از چین و شتنج سر تا سر آسمان را پیمودند تا به هفت کشور زمین باران رسانند روان ابرها جان پذیرفتند و در کال بد سرش نرم نرم بر خاک کشزارها فرو ریختند و گیاهان روی به آسمان رویدند و گل سرخ چون آتش از درون شاخه ها به بیرون تراوید این چنین کاربان آتش و خاک و باد و باران بر گردونه مهر و ماه و خورشید رخشان روی به سوی خانه نوروزی ایران روان شد نوروز ایران بر شما خجسته باد پایان هزارمی سال سرایش شاهنامه ایران <متصف> در یعنی شی؟ خب متاسفان ما یک خودی از فرهنگ باستانی جدا افتادیم و به همین دلیل که این ستاره از این و بزرگی رو که ایرانیان خیلی ارونیایش ستارش میکردن ما مجایت تا نمیدونیم بله. اگر صبحا سپید دم شما رو به آسمان خراسان یعنی مشرق بکنید یک ستاره درخشان میبینید که درخشنده تر از خوش و این ستاره تیشتره که ایرانیان باستان او رو گفتن سپاه خراسان یعنی مشرق و چندان به طرف او رفتن تا دیدن که جایگاه او روی دریای فراخ کرده یعنی اقیانوس آرام و گمان بر این که به فرمان و نیروی او هست که این اقیانوس به جنبش در میاد و جنبش این بخار برمینگیزه و بخارها به آسمان میرن به تیشتر و ابر میشن و بعد باد داده این ابرها رو به سوی کشتارهای هفت کشور زمین میرسونن همواره در ناموهای باستانی ما بارون برای هفت کشور زمین خواسته شده یعنی در جغرافیای باستان ما هفت کشور بیشتر نمیشناختیم کشور میانین که ایران بود ایران درخشان شش کشبر در پیرامون ایران شناخته می در اون زمان و روی هم رفته بهش می گفتن کشبر زمین و همواره بارون رو برای هفت کشبر زمین خواستن ایرانیان بلکه اگر برای ایران به تنهایی می یعنی جان جهان رو می آزردن. همه کشتار ها به خصوص نمیشه همه کشتار با دانه های درست و ریز از این بارون که تیشتر شدن، سر با کشیدن. تیشتر یک بندی هم داریم یک یعنی بخشی داریم برگشتو به نام تیشتر یشت که بخش خیلی زیبایی است همش درباره زیبایی هایی که از فرمان تیشتر برای جان جهان حاصل میشه اونجا سخن گفته شده و همه جا شادی جانوران گیاهان و انسان ها به همین بارونی است که تیشتر هدیه میکنه و جالب اینه که بدونید که در ایران و باستان روزها رو نمیشمردند هر روز یک نام داشت روز اول آورامزدا، روز دوم بهمن که اندیشه نیک باشه. و نخواستی صفت خداوند. که خداوند با اندیشه نیک چه هنر رو داره میکنه. روز سوم آش و هیچتا. یعنی برترین زیبایی و پاکی و راستی که ویژه خداوند. یعنی خداوند زیباترین، پاکترین، راستترینه. روز چهارم شهریورد شهریورد در عبستاخ خطر و ایریه اومده یعنی پادشاهی آرمانی اون پادشاهی آرمانی که خداوند از اوج آسمان ها و کهکشان تا بال یک پروانه تا نفس یک پشه فرمانش روان هست همه جا همه وقت بیدرنگ، بدون بدونن ور بدون دستیار بدون معمور بدون ابلاغ فرمانش به همه جا و به همه چیز و به سر تا سر این جهان از آسمان تا زمین روان هست یک چنین شاهی رو ایرانی ها شاهی آرمانی که ویژه خداونده این در واژه شهری بر نفته است به روز چهارم همینطور روزها هر کدوم یک نام داشتن تا می رسید به روز سیزدهم هم که تیشتر باشه این روز ویژه همین ستاره تیشتره که ده هزار کلوین نور حرارت داره و یکی چشم درخشان و آسمانه و ایرانیان همطور که کردم اون رو سپاهوت آسمان و خوبرران گذاشتم. بعد زمان باشه درباره سپاهوت های دیگه هم من سخن خواهم گفت حالا فعلا سخن از سی هست من. و نخست این بار ایرانیان فکر کردن که آبخواست و آبکست من این دو تا واجه رو در بر برابر جذرم مد پیشنهاد کردم. اخضر انخس آب و آبکار اوکست می آب بت میس که شنید گاز خیلی زیباست <تصفح> بوسه <تصفح> بعد فکر که از تیشتر باشه. بعد ها متوجه شدن که نه از مقابله نیروی ماه و خورشیده. و در, در کتابی که ما داریم وتون در درس به نام گوندهش یعنی ریشه آفرینش و او خودش از یک کتاب باستانی دیگه به نام داندوت نس که نوشته شده داندوتم یعنی آفرینش آفریده ها دام، آفریده ها این از رو اون نوشته شده. در اینجا میبینیم که خیلی روشن میشه که از سوی ماه به هرگاه دو باد به سوی آبها میزند. یکی از این بادها فراز آهنچی، یکی پرودو آهنچی. یعنی در هر شبان روز دوبار ما در در های آزاد آب داریم دوبار آبخاست داریم وقتی که در از روی دام داد نس نوشته شده شد، دام داد یکی از نس‌ها یکی پیشتر از یورش اسکندر گوجستک به ایران و سوزندن کتاب ها و فرنگسره ها همه دانایان ما این کتاب موجود بوده و پس بنابراین ما سه سال پیش به اینجا رسیده بودیم که آبخاست و آبخاست از نیروی مقابله، نیروی ماه و خورشیده. شما میدونید که شیخ اشراقه که دانشمند ایرانی مسلمان پسر اسلام اما نوشته هاش نشون میده که او دست داشته به کتاب های باستانی و او در کتاب خودش نوشته که جز رومد البته اون نویشه جز رومد به مقابله نگرین بستگی داره یعنی ماه خرشید یعنی ماه خرشید رو برهم هم قرار بگیرن آبخواست میشه و ایرانیان این نیرو رو از اقلن به گواهی دانتونسک از 3000 سال پیش میشه و حتی فرجرت یعنی نمیدونم شما کنار دریای پارس بودید کنار دریا آزاد وقتی که آب حرکت میکنه میاد میخواد آب خاص برسه یک سرودی داره که این سرود با جر جر همراهه وقتی میخواد برگرده همینطوره و این خود جر یعنی یعنی،, جر یعنی نیایش و فرجرت یعنی اون چیزی که سرودی که حرکت میکنه میاد به طرف ما حتی اون سرود این رو ستایش میکردن و همواره تیشتر و باران و آب مورد ستایش ایرانیان بود و در اینجا می بینید که تیشتر هست که در سرتاسر سر دریای فراخ قد به چون بیشتر میجیره دونه ایرانیان این هفت کشور رو آباد میخواستند باران این برکت خداوند رو برای همه اون کشور ها چه بچه اشاره قشنگی باران ریز اون بارانی که چادابی میاره اون آن بارانی که بهار رو میاره ما این باران رو بیشتر در بهار میبینیم و این خاص ما ورای این بهار خواستن برای این هفت کشور نشان از چیز رابطه توجه به چیز... من نمیدونستم اینو این چیزی که شما گفتید نشان از یک خاصه یک میل بهاریه یک میل ب... نوروزیه این هفت کشور چه کشورهایی بودن؟ ام... کشور میانین جهان ایران بود که بهش میگفتند خوانی رف با می یعنی ایران درخشان و دو کشور در خراسان و قربران یعنی شر و غرب که ارزه و سبب دو کشور در بخش شمالی، شمال شرقی و شمال غربی و دو کشور هم در جنوب غربی و جنوب شرقی. این مجموعه اینا شش کشور می که ایران رو در برگی رسوزند. در کتاب های ما ایما اومده که ایران به اندازه همه اون شش کشور دیگه بوده. این که می بینید که حافظم یک خوبواز شش جهت این شاید خودش نمیدونست ولی این یک فرمان و باستانی بوده که میدونه در شیش جهت کشور هست است که برای همه کشور ها آزادی میخواست آبادی میخواستن و نیاکان فرخونده ای ما نخستین کسان بودند که چند هزار سال پیشتر از دیگر جهانیان پی بردند که جهان یک جهان یگانه داره از یک جهان یگانه فرمان میبره و این جهان یگانه به تمام ذرات خودش فرمان میده و باری هر ذره از این جان جهان اگر آسیب ببینه در کل جان کلی جهان آسیب می بینه بنابراین آزار رسوندن به یک مور رو روا نمی چون این در گفتار ایرج یعنی پیسر سبوم فریدون که در حقیقت ایران متعلق به او شد میگه که به نزد کهان و به نزد نهان به آزار موری نیرزد جهان وقتی که ما جهان دوست داشته باشیم نباید یک نور رو در جهان آزار بدیم ما نباید شاخه درخت رو بشکنیم اگر شاخه درخت رو بشکنیم جان جهان آزار دیده اگر ما بخوایم که درخت رو هرس بکنیم باید در زمانی هرس بکنیم که درخت خوابیده باشه و اگر بخوایم به دلیلی درخت رو قطع بکنیم باید باز در زمان خوابیده در فصل رهکاری قبلا هفت نهال به جای اون, اون یکی کشته باشیم تا اگر بعضیاش نمیگیره بالاخره یکی دوتاش بگیره که جهان جهان آزار نبینه یک یک عضو از اون رو ما داریم میبریم این خیلی خیلی رو این تاکید میشود در نزد نیاکان خردمند ما و بعد به طوری که میبینیم در عرفان پس از اسلام نام برده میشه از جهان صغیر و جهان کبیر یعنی در نوشته های عزیستین و, و در نوشته شیخ اشتراق زیاد به این اشاره شده به علتی که اونا آگاهی از فرهنگ باستانی داشتن که در اونجا گفته می شود مه جهان و که جهان بنابراین مه جهان که فرمان بر همه عاعضا خودش که که جهان باشه میان که یکی از آن که جهان باشه میراند این فرمان رو او رو موبت گرامی بداریم به هر صورت م... که جهان یعنی انسان یعنی انسانی که جهان کوچکی و متعلق به همه جان جهان و همه جنگل ها و همه آافشار ها و همه روز ها و همه امواج آخیز ها کوخرران و به همه آسمان زمین با همه پرندگان زیبا با همه اون امواج که روی دریا میغلند و پیش میرنن و آواز میکن همه اینا عضو یک جهان هستن یک جان هستند و همه گرامی هستند. این تأثیری که ما گرفتیم این نوروز برای ما تأثیر از طبیعت هست با توجه به نگاهی که الان شما فرمودید نیاکان ما داشتن نگاهشون به طبیعت و تقارن این و سال نو، نوروز و شروع زندگی ما همه اینطور فکر میکنیم ما نوروز ما از جایی شروع میشه که طبیعت نو میشه درخت خونچه براورد و بول بولان که جهان جوان شد و یاران به عیش میشستند میبینید که از عیش جو... یاران با خونچه درخت هم... با هم همگام یاد میشه و بله بشر هم اگر خودش اوزی به اندازه یک مثلا فضل پروانه بدونه میبینیم که در بحار و با نوروز باید پرواز کنیم باید عشق این باید شاد باشیم باید باچش های هستی رو همو دوست داشته باشیم البته بشر بیشتر از پروانه میدونه اما متاسفانه پیوند پروانه با جان و جهان بیشتره به دلیل اینکه ما با آگاهی ها و اطلاعاتی که پیدا کردیم کم کم پیوند خودمون رو از جان و جهان گسسته میبینیم گرچه پیوند هست اما ما نمیبینیم اما پروانه میبینه پروانه به موقع کار میکنه پروانه به موقع پرواز میکنه پروانه به موقع جفت خودشو از کلومترها اون طرف در تا و تو این باد, باد پر میزنه پرواز میکنه میرن هم دیگر پیدا میکنن و به هم مهر میوزن هر چقدر سطوح پایین تر باشیم یعنی جانداران جهان پیوندشون با جهان یعنی خیلی نزدیکتره خیلی خیلی نزدیکتره در نظر نیاکان ما دو گونه خرد شناخته میشود که آسان خرد یکی گوشان سرود خرد می می یعنی اوسن خرد یعنی خرده خداداد گوشان سرود خرد یعنی خردی که در گوش ها سرود میشه این ویژه جانوران برتره مثلا در اسب و سگ و دلفین اینها اینها میتونن که یه چیزایی یاد بگیرن یه کارایی رو بکنن در میمون خب خیلی بیشتر هست اما خب در انسان خیلی خیلی گسترده است و به علت اینکه ما اون نیروی گوشان سرود خربه خودمو رو تقویت می‌کنیم کم کم از اوسن خرد جدا میشیم نمیگم شما دیده باشید وقتی که مرقی که روی تخم خواب کرچه هست بعد, که بعد از بسی یک روز اون جوجه از تو شروع میکنه به شکستن تخم مرقی و مادرشم از بیرون شروع میکنه به شکستن و این جوجه که اومد بیرون بیدرنگ شروع میکنه به جکچیک و روی زمین نکردن این از کجا میدونه که دونه این و روزی این رو زمینه این که تا تو حالا که توی یک قفص در بود که این آسان خرده خرد خداییه که در جان اون جوجه هست در جان همه هست منطقه خب بشر خودچی تشیده بالا در حیطه دانش و در فن و در کارهای دیگه کم کم پیوند خودش رو از اون آسم خرد جدا میبینه گرچه اون خرد از ما جدا نیست برای که به هنگام نرز ما میزنه به هنگام اکسیجن ها میاد به هنگام گازگربونیک در میکرده به هنگام تمام سلول ما. اون با ما پیوند دارم ما پیوند خودمون متاسبانه نمیبینیم و این نوروز باعث میشه که این خرد رو ما دوباره پیدا کنیم حال در جای خود امید خدا باید این طور باشه من از کردم که اگر به اندازه اون پروانه از آسان خرک بر خود دار باشیم باید بدونیم که نوروز هنگام شادیس، هنگام مهره هنگام سروده هنگام نیایش، هنگام مهروردیدنه و همه اینها که در دیده میشه. Thank you. دوجنیدی همطور شما شنوندگان عزیز من واقعا خیلی فجوری نمیخاستم این حظ دکتور جنیدی باشه الان خیلی از های ما شاید در راه هستن دارن میرن سفر حالا میخوام برگردم به همون شعری که شما از شاهنامه بخوندید و شما های عزیز روی برنامه پنجره های روی مهتاب رو میبینید و آقای دکتر فیدون جنیدی در باره, در باره این درس نخوست در نیاکان ما در باره نگاه آنها به طبیعت صحبت کردن از اینجا به بعد میخوام بفردازیم به شاهنامه من یه مسابقه حالا به نوعی مسابقه حالا صدای شنونده ها رو ما تخش بکنیم و اونها برای ما از شاهنامه بخانند رو میخوام در این برنامه در این دو برنامه که ما در سال جدید داریم انشاءالله اتفاق بیفته و دوستان تماس بگیرند. من تلفن های برنامه میدم خدمت شنوندگان عزیز و آنها به ما زنگ بزنند و از شاهنامه برامون بخونند که اشعار شاهنامه رو برامون بخونند شما تلفن های ما 222,485 222,485 222,58 800 222,58 800 و 3558 هم شماره پیامک ما شما با ما تماس بگیرید از شاهنامه بخانید برای ما اویاتی رو از شاهنامه بیا نگاه خودتون یا اگر, اگر شاهنامه خونید در این مدت تعطیلات ایده نوروز که حتما ما میگیم بخونی، برامون بگید اصلا چی دریافت کردید با ما صحبت کنید با ما تماس بگیرید و انشاءالله در اولین برنامه بعد از این چند روز تحتیلات یعنی بعد از 13 نوروز ما صدای شما رو پخش خواهم کرد و در خدمت آقای دکتر جنیدی میپردازیم به موضوعی که شما مطرح کردیم و اشعاری که شما از شاه نام خودید من خیلی هست راستی آقای دفتر جنگی در اون شکل بزرگان به بازی به باق آمدند یعنی چی؟ بازی از ریشه وز عوستایی گرفته شده وز یعنی جنبش نه. و شما این رو در پرواز هم پروازم میبینید یعنی پره حال پره و یعنی به سوی پیش جنبیدن که پرواز میشه. دروازه پیشواز بله پرواز اصلا پ... ایشش از, از اینه بله, بله. بله و در واژه پیشواز میبینید یعنی جنبش به طرف پیش پیشواز پیشواز اگر چقدر پیش؟ زیباش اگر ما, ما این مفاهیم رو بدونیم چقدر زیباش اگر ما زبان‌های باستانی رو بدونیم وقتی مفاهیم پیدا میشه. خب حالا بازی یعنی که در زبان پری بوده باچیک از واتشوب و اینا با هم یک تبدیل میشه از همطور که کردن. از کردام از یکی وژه از سویی از یعنی جنبش و میبینی که رقص را رقص همه با جنبش هم روه. به همین دلیلی که رقص یعنی بازی الان هم در خراسان همه میگن بازی حتی در آذربایجان هم خیلی از این ها مثلا شمشیر بازی بود میگفتن شمشیر بازی نمیگویند شمشیر. بس. بس. این چیزی که الان در خراسان هست بگیگن چوب بازی نمیگن رقص اصلا رقص نیست چما اگه دیده باشید کاره که در بیرژند می، انجام میگیده این یه هماسه هست یعنی واقعا مثل که میدان جنگ میمونه در سبزوار در کاشمر در نیشابور، در همه منطقه. من تا اونجا که دیدم اون حرکت عجیبی که بین چوب بیرجند دیدم از عجیب تره و اینها باید از تن نیرومند از اولاد از، آماده برای جست و خیز برخوردار باشن حالا در مجلس عروسیه این کار میکنن در حقیقت خودشون رو آماده کنن برای جنگ یعنی این وزد یعنی حرکتی که در جنگ هم ممکنه اتفاق یفته و در اونجا باید بدن آماده باشه برای حرکت و بر جمعه اون وقت مثلا در وقتیاری و به قشقایی دستمال بازی داریم یک رساله ای هست از زمان ساستانیان باقی مونده خسرو کواتان و ریدک ریدک اینه یک پسری که بین ده تا 15 سال سن داره این پسر 15 سال است میاد جلوه شاه رو میگیره و میگه که من نیاکانم به نیاکان شما خدمت کردن و پدر من در کودکی من مرد و مادرم من رو در اپورنوئی یعنی دستینه برنا بودن یعنی ما امروز خیال بکنه برنا یعنی جوان در حالی که یعنی کودک از پنج تا 10 ساله منو به فرهنگستان گذاشت اینجا الان من یک مطلب رو بگم به شما جانب. که تمام اروپاییایی که درباره فرهنگ ایران مطالعه کردن همه دروغ میگن و همه میگن که ایران در ایران سواد نبوده، خط نبوده، آموزش نبوده و مدرسه نبوده حالا تو همین داستان می که میگه که مادرم من رو و اپورنایی به فرهنگستان نهاد اپونایی از پنج تا ده سال است خب پس این چندیه که باید برم مدرسه چطور ایران مدرسه نبوده. من یک گفتاری نوشتم که در تارنمای بنیادداری شعبور هست فرهنگستان و نظام آموزش در ایران باستان حتی انش های بچه رو من اونجا آوردم. درسته حالا این نام فرهنگستان اومد این اندازه با می وارد دیوارد فرهنگی در این پدوشو از این کودک میپدوشش میکنه که تو چقدر چقد آگاهی داره آگاهیاش در زمینه مطالعات اویسطاس و بعد جنگاوریه و بعد اسبواریه بعد تدبیر منزله بعد حتی خوراک بعد انواع موسیقی و گیاه شناسی از جمله این کودک یعنی جوان پنج ساله از 24 نو گل نام میبره تحت عنوان اسپرم چون گل فقط گل سرخه هم همه اس... هر کدوم اسپرم ما وقتی امروز روز گل نرگست اشتباه میکنیم خودش همون نامشه شما نگاه کنید که یک بچه پنج ساله 24 نو گل رو نام میبره و برای هر کدوم از اینه یه معنی میشماره که هر کدوم چه بویی میده مثلا برای نرگس میگه بوی دخترکان رو میده برای گل دیگه میگه بوی مادران میده. بوی یکی می گل بوی فیلم میده. مثلا مرزنجوش، مرزنجوش بوی پزشکی میده. 24 نوع گل. حالا در اینجا یک بخش هم درباره موسیقی و رقص هست. ما می‌بینیم مثلا از دگ باچیک یعنی بازی با دیگ نام میبره. من خودم اینو در زندگی خودم دیدم در ب... کودکی وقتی که عروسی بود یه دیگی رو به سر میذاشتم و بعد یه خوبی بس خوب. کشیدن. بالای مثلا سینه خودشون از پشت میبستن و بعد یک لباس روی این میداختن و روی شکم با زغال چشم عبرو دهن و را. یعنی اون کلاه باشه و این شکم سر باشه و این شخص میرخشید و مردم شاد بودن از حرکاتی که روی شکم پیدا می‌شد و دهنش گزمیشو به اینا میخندیدن من دیگوازی رو دیدم که در مدت مثلا 15600 سال الان هست سل باچیک یعنی بازی با سله چون سله الان در تهران شناخته نمیشه اما در خراسان شناخته میشه یعنی سبد نمیدونم شیشک باچیک یعنی رقص گوسپند شش... شش ماهه شیشک یعنی گوسبند شش ماهه بعد زنچیر باچیک یعنی رقص با زنجیر. دار باچیک رقص با چوب میدونید که دوتا چوب رو دو طرف میگذارن و بعد از روس طناابرد میشهن و هنندواایی باشیک ان دروا باشیک یعنی رقص روی هوا همین همین چیزی که از سوش از روی طنارت می شدن در بند بازی, بند بازی. بند. ولی وله یکی از اینا شمشیر بازی بود من شمشیر بازی رو پیشتر در آذربایجان دیده بودم ام... که دیگه امروز فکر نمیکنم الان باشه ولی محخصوود اینکه این بازی ها همه از چند هزار سال پیش تا امروز خیلی آش باز هنوز هست ولی بعضیش فراموش شده نشانه تدابعه فرهنگ یک مردمی که ریشه وضع عرستایی یعنی جنبش این همه جنبش و کوشش به هم که هم ماه شادبانیه بینندگان باشه هم در حقیقت به پرورش تن و اندام و ازولات اینها بیانجامه که بعد اگر جنگ ناگهانی پیش اومد همین ازولاتی که اینجا داره چوب بازی میکنه اونجا بتونه شمشیر و گرد رو دسته منظورتون از بازی،, بازی بزرگان همه این مجموعه بازی ها بوده دیگه بله در اینجا انجام میشد دیگه حالا بله. این شاه دیگه بله. برایش همه این بازها رو انجام میدونی به بازی رفتن یعنی براشون رقص اینها انجام میشد یعنی این بله. مراسم انجام بله این توشیزا بود بله. در پیدایی نوروز در شاهنامه برموه فرمانید ما در دو, در دو جا اشاره داریم در شاهنامه درست از میکنم بله حالا من پیشتر از اینکه درباره پیدایش نوروز یا پیدایی نوروز صحبت بگویم اینه که ناچار یک پیشگفتاری رو بگم و اونی که در آغاز شاهنامه دو باید اومده است که تو این را دروغ و فسانه مخاند به یک سان روش نزمانه مدان از او هرچه اندر خورد باخرت تگر بر ره رمز معنی برد نه. که در اینجا فیضوسی می که این چیزهایی که داستان مثلا دیو و جادو چی و اجده ها اینا،, اینا رمز داره هر ولی جای دیگه میفهمد که که هر گناهی هست آواز این نداند به جز پرخرت راز این راز رمز در پیشگفتار شانامه عبو منصوری که خوشبختانه این همین پیش گفتار باقی مونده می بینیم اونجا به جای رمز میگه مغز می که این سخن... سخنها در این بیاید که شگفت نماید اما این نیکو شود تو را چون مغز آن را بدانید و اون کسی که دشمن دانش باشد این را دروغ کرداند در حقیقت نمیشندگان شاهنامه می که پشت سر این داستان ها یه رمز هایی نفت است این رو که از کردم حالا باید به رمز نوروز با. آغاز شاهنامه با کیومرس است کیومرس در عوستابود گایه مرته یعنی جان میرا یعنی جان پدید اومد در جهان و ویژگی جان چیه مردنه یعنی گزران جهان در مردنه یعنی هنوز همه جانداران جهان همه از و همین همداد هستند. به دنیا میان و زمان رو میزرونن و میمیرن این در واجه گیا باقی مونده نخستین کسی که توجه کرد به این واژه شخصی است بنامه شهر مردان ابن عبالخیر که گفت که کیومرس این جان گویا اگرچه نادرست گفت اما همون بود گوینده را راه بر یعنی نشون میداد که این باید بشکافیم ببینیم که این نام یعنی چی و در زمان کیومرس سرماهای رو میده که این فرزندش شکمک میمیره و بعد از اون هوشنگ هوشنگ در شانونه در ارسطو هوشیان هست یعنی خنینیه هو او یعنی خوب در واژه هومن اما به صورت هو باقی مونده و یعنی خنینی یعنی بشر شروع آغاز کرد به خانه ساختن البته نخصوص خانه ها در کوهستان بود و غار بود که مادران ما اونورا ساختن که من من در یک من دیگه این رو گفتم. بله. بعد از دوره هوشنگ به دوره تحمورس می‌رسیم. تحمورس در اوستا تخم و اورواپا. اورواپا یعنی روبودن. تخم یعنی پهلوان. پهلوان رواینده یعنی زمانی که بشر جانوران رو گرفت و جانوران رو از که از شیر استفاده کنه. اما گرفتن جانوران احتیاج داره که بدن قوی باشه. و این تخم، تخمو یعنی تهم در زبان فارسی شده که تهمتن ما داریم رباینده قوی در نمیشه های باستانی از تهمورست با زینواند هم با صفت زیناوند هم یاد شد زیناوند یعنی دارنده زین زین یعنی جنگ افزار برای سبود زعیننگ در پردبیش زن زین در زبان ارمنی امروز زین گفته میشه یعنی جنگ افزارین اصله هست ولی امروز ما به, پا... به اون چیزی که رو میکنیم. خب تهمورس زیناوند یعنی دارنده اصله این نخوصه این اصله که چنگ باشه و نیزه باشه به دست بشر پیدا شد و که به یاری اون چیزا می رو میگرفتن جانوران رو میگرفتن بعد از این دوران جمشید و دوران جمشید در عوستا پس یه مخشه اتا یه مخشاعته یعنی همزاد خورشید یعنی دوران درخشندگی زندگی نیاکار که یک سرمایه چهارزار ساله بر اونا میگذره که اینو زمین شناسان امروز میگن ورم چهار ورم چهار از چهارده هزار سال پیش آغاز میشه تا ده هزار سال پیش ادامه پیدا میکنه و اینها در هم در شاهنامه به صورت رمز و اشاره هست و هم در نوشته های باستانی دیگه ایما که من اینا رو همه رو در کتاب زندگی به محاجات آرگیان شهر دادم و در کتاب عظیمی که در دست دارم به نام داستان ایران که وستده شده اون هست اینها خیلی خوب شکافته شده بعد از اینکه سرما به پایان میرسه ده هزار سال پیش کم کم بشر داره کارای میکنه مثلا فرض کنه که جامع و نخ و بافتن و نجاری و کشتی و پیدا کردن کشتی و خیلی چیزای دیگه تا میرسه به دارو و دارو باید ظرف باشه اول که بتونیم دارو فرهم بکنیم ده. و این است که سفال کست شد در جهان بشر این در نزدگی میان کار ما البته و پیدایش سفال مکول به هشت هزار سال پیشه و این شعر پیدایش سفال ش... صفال... به خاطر دارو بوده نه نه سفال که پیدایش په... دا... زرف دارور باید یه زرف داشته باشه آه. این زرف که پیدا شد؟ کمو سفاله برای این یک بزرگترین پدیده فرهنگی جهان شناخته شده که شناسان همه همین رو اعتراف دارن اما هیچ خود بوده نمیگن که صفال زرف سفالی در ایران پیدا شد چون اونها همه دشمنی دارن و همه یک در حقیقت همداد یعنی سیستم همداد رو به سیستم من پیشنهاد کردم یک همداد خیلی دشخیمی احریمانی هستن که در همه زمینه ها فرهنگ ایران رو بکوبند اینا رو در 8000, سال, 8000 پیش در سال پیش در ایران جام سفال پیدا،, پیدا شد اینجا هم اینجام هست که اشاره شاهنامه است که سر سال نو هرموز فرودین هورمز فرودین هرموز یعنی روز اول دیگه کردم روز هرموز فرودین یعنی روز اول فروردین. سر سال نو هرموز فرودین دل... ب... راحت شد الان به ب... ب... یاد این واسن شناسان دروگو رو پایی افتادم بیاسود از رنج تن, تن دلزکین بزرگان به شادی بیا راستن می و جام و رامشگران خواستن و میبینیم اه... که جام از جام نام برده شده و اگر جام نبود می هم نبود پس, این, پس این وقتی که اینا مقارن هست با سر سالون و فرودین باید بدونیم که اگر جام 8000 سال است، پس 8000 سال پیش نیاکان ما پیدا کردند که این آغاز باهاره به این که چیز خیلی شگفته بلکه سالها به آسمان نگاه میکردن و این صورتهای فلکی رو یافتند و بعد از اینکه هزاران سال نگاه میکردن بالاخره متوجه شدن که خورشید وقتی که از یه صورت فلکی به نام بره که خودشون نام گذاشته بودن با اون همگام میشه اون وقت آغاز بحاره اما در اینجا یک کیفیت شگفت دیگه هم هست و اون اینکه که فهمیدن که روز با شب برابر شد اگر یک وسیلهی برای سنجش زمان نمیداشتند از خجام میفهمیدن که روز با شب برابر شد یعنی بدونیم ای جوان ایرانی ای ایرانی بیدار شو. می اوناون گفتو که ساعت رو اختراع کردند. ده کی 8000 سال پیش زمنا بدونید که ساعت هم واژه عربی نیست به صورت با عین نوشته شده همونطور که تهران تا مدتی پیش با تی نوشتهن یا طشت رو با تی نوشتهن اینا میویسم این, این ساعت ما در زبان کردی یه زبان زد داریم ساعت ساتوکات یعنی گات یعنی زمان ساتان یعنی زمان یعنی هر لحظه و در زبان راجی هم یک اصطلاح داریم دقیقه ساعت یعنی دقیقه به ساعت یعنی مرتبن. این ساعت هنوز باقی مونده در این تا زبان یعنی یعنی ساعت. یعنی این که سنجش زمان. حالا شما ذهنتون متوجه میشه به اینکه شاید ساعت آفتابی بوده. خیلی خوب بوده. شب رو چطور سنجیدن که فهمیدن با روز برابره. خیلی شگفته این. این خیلی شگفته. و ما به این روشیز فکر نمی متاسفانه اینی که من میگم کنم بیداش و ایران خوبی که هست در اید نوروز چون خانواده ها هم هستن شاهنامه میخونن بعضی از اشعار شاهنامه ممکنه مستقیم درباره نوروز نگه اما شادی آوره روح بخشه زندگی بخشه و آقای دکتر فریدون جنیدی میخوام برامون بخونن از شاهنامه من فکر بکنم که از اونجای آغاز بکنیم که در نجات آریا بعد از مهاجرت هایی پی اتفاق افتاد یعنی چشه سال پیش این رو من با سنوات زمین شناسی معین کردم که میگم هشه زار سال سال شما شکل زده نشین. البته اینا در داستان ایتان کاملان خواهد اماید میبینیم که این در حقیقت مقاطع رو دانش امروز زمین شناسی معین کرده البته من از جاهای دیگه هم به دست آوردم ولی وقتی که قرب برای ما فقط 2500 سال تاریخ می سازه و دانشگاه های ما هم همون دستمان در درس میدن و واژه پیش از تاری بعد از تاری خو که هیچ اون برای اروپا مث بره نه برای ما خب اینا همشه گرفته میشن شرونده اامی ما ممکنه گرفت زده بشه یعنی چی ۶ سال اما نه مطمئن باشید که اینا درسته و به زودی کتاب داستان ایران به دست ایرانیان خواهد رسید می که دانش امروز زمین شناسی همه این مقااطه رو در حقیقت تعیین میکنه و درست میداره شیش هزار سال پیش گرمایی در ایران رخ داد که بالاخره آب کمتر شد و سبز کمتر شد و گروه ناچار شدن که مهاجرات بکنن در برای پیدا کردن چراگاه های جدید و این گروه هایی که رفتن تحت عنوان سلم و تور ازشون یاد میشه سلم یعنی اروپا ما الان هنوز در اروپا جاهایی داریم که به نام سرمت ها ساخته میشهد شناخته میشد. سلم در عوستاه هست من در پهلوی شد سرم در فارسی شد سلم یعنی اینا کسان بودن که رفتن به طرف غرب و اروپا رو بعدها تشکیل دادن یک گروه هم به طرف تور رفتن به طرف آسیا مرکزی اون گروه که باقی موندن نامشون بود ایراج یعنی در ایران باقی موندن ایر, ایر یعنی ایرانی دیگه من. در ایران باقی موندن موقعی که اون دو تا گروه رفتن به کوچیلن به طرف سرزمین های جدید البته باید بدونیم که اونا, با اونا پیر مردان و پیر زنان نرفتن خیرتمندان نرفتن پیزشکان نرفتن صنعتگران نرفتن هنرمندان نرفتن اینو فقط یک کسانی بودن که گله و گاب داشتن و گاب و گوسفان داشتن با همین در حقیقت چارپالان خودشون رفتن خب سرزمین های جدید هم پر از خار و تیغ و جنگل و امکانه زندگی خوببراشون نبود ما اونا که رفنروپا به طرف اروپارو رففتن خب خیلی سرد بوده اونایی که به طرف فاصل مرکزی هم بود رفتن خیلی سرد بوده کم کم کم کم اینا یاد اون روزگار خوشی که در کشور میانیم داشتن در اینا زنده شد و آهنگ این کردن که بیان ایران رو بگیرن و نامه ای نوشتن به باشندگان مرکز زمین مرکز جهان که ایران باشه اینی که میگم مرکز یعنی پایتخت جهان اکنون هم ایران پایتخت جهان است. یعنی در همین جهان شناخته شده از شرق راقون بگیریم تا غرب جزار کناری که در نوشته های مخ... به صورت خالدات اومده 180 درجه هست 180 درجه که نیوکانو ما اینا رو سنجیدند و پیدا کردن وسطش نیم روزش میشه ایران و بنابراین ایران مرکز جهان همین الانند بعد از که آمریککان پیدا شد اون طرف با 180 درجه نیمروز اونجا مطابق با نیمروز ما بشه یعنی ما اگر قدر خ... کشور خودمون رو بدونیم و قدر کارهای نیکان خودمون بدونیم بریم قرق بشیم در دریای های فرهنگ نیاکات میدونیم که هنوز ایران تخت جهان و پایتخت جهان و ما تخت نشینان جهان هستیم. ما این تخت رو از نیاکان خدمند خودمون یادگار داریم به ارث گرفتیم این یادگار فرخنده را نیک بدانیم بریم مطالعه کنیم. نه نیستیم فقط این شعری که مرتباً انسان‌ها رو دور خودش می‌چرخونه و به هیچ جور راهنمایی وره نه بعد شاهنامه رو خون در هر صورت اینها به پای تخت ایران می‌نویسن که در شاهنامه از اون به نام فریدون یاد میشه فریدون در اساس ترا اتاونا ترا یعنی سه در زبان سانسکریت و زبان اوستایی سری یعنی سه می‌دونید که در زبان انگلیسی ثری است و بعد در زبان فرانسه تبدیل میشه تو, تو،, تو، یعنی تروا یه جایی تلفظش قبا میگن و در زمان آلمانیش دقای همین واژاست یعنی سه در این سه بهره شدن نام فریدونه یعنی دورون 6000 سال است که منجر میشه به این ماجرات ها و کوچ ها و ناامید نیستن که تو ما به این بخشی که تو کردی جهان رو و ما سرفرود نمیاریم و همه خوبی ها رو دادی به ایرج و به فرزند کوچیک ما بزرگترین مدور هستیم و ما که بگیریم کشور اینجا فریضون ایراج رو آگاه میکنه خب من این بخش از شاهنامه از رو میخونم دیگه گرامی جهانجوی را پیش خواند همه گفته ها پیش او باز راند و را گفت کن دو پسر جنگجوی جوی زخاور سوی ما نهادند روی خاور یعنی مغرب ما امروز اینم به شما ارس کنم که تا پیشتر از حمله مغول در تمام نوشته ها می بینیم که خراسان یعنی مشرق، خوروران که تبدیل شد به خاور یعنی مغرب، آپوختر یعنی شمال و نیمروز یعنی جنوب. ببینید چه سر بی ما با حمله مغول خوردیم که یک دفعه دست چپ را یک ملت دست چپ را از خود فراموش کرد. ما روسیه گفتم خاور یعنی مشرق در حال که مغربه و فکر میکنیم باختر یعنی مغرب در حال که شماله در نمیشته ها و شعرهای پیشتر از فیدوسی هم میبینیم هست مثلا افراد رودکی میفرماد که مهر بین چون از خراسان سر به تافت سوی خواهر از خراسان میره به طرف خاور یعنی مغرب ولی این چه زربه ای بوده یک ملت خورد که اینطوری دست از خوب خود هنوزم فراموش کردین هنوزم اینطوری فکر میکنیم خب حالا از این بگذریم میگیدین که من اینا رو میگم که جوانا تکون بخورن بیدار بشن باختن میشه شما باختن شما له باخر خاور خاور یعنی میشه بغرب هم میشه مشرق ما ان میگیم الان شما میگیم دیگه بله الان میگیم رو میگیم مشرق خب... از بس مردم گیش شدن پرهنگستان ها رو کن با ازم بردن دانشمندان رو کتاب رو سوزندن ما یک کتاب داریم در موزه آسان قصد در کتاب آس... آسان قصد کتاب جالبی هم نیست ولی خب واید از یک... یک چیز خیلی مهم میکنه و اون که نوشته که در حمله قز وقتی که به نیشابور اومدن 17 تا کتاب رو ریختن بیرون و این کتاب رو تبدیل به مقبا کردن من در... از کتاب مدرسه صابونی این یکی رو تونستم که در ببرم زیر قبا خودم پنهان کنم و این یکی رو من میبخشم به کتاب خونه آسان 17 تا کتاب رو آتیش دادن مقبا کردن این حمله قدس یک حمله است چنگیز چقدر کرد تیمور چقدر کرد اسکندر آغاز کرد این جریان. همه اینا چون میدیدن کشور زادگاه خرد و فرهنگ با نخست چیزی که مبارزه میکردن کتابای ما بود بنابراین همه دانشمندان رفتن کتابا از بین رفت و حالا چیز شد دست شپراست و منو ما فراموش کردیم دنباله شیر بکنم الان گرامی جهانجوی را یعنی ایرج رو پیش خواند همه گفته ها پیش او باز راند او گفت کند دو پسر جنگ جوی سه سوی ما نهادند روی از اختر چنین نستشان بهره خود یعنی گردش آسمان از اختر بهره اونا این از اختر چنین نستشان بهره خود که باشند شادان به کردار بد برعض که ما شادان از کردار نیک بودیم اونا شا... کردار درو بچا بود. خب دو کشبر آبش خور است که آن بوم ها رو دروشتی براس همون چیزی که قبلا عرض کردم. بله جنگل، خار، سرما اینو دروشته یعنی چیزی که بشر انجام میکنه اینو درشته براش سخته و اینها آزارش, آزارش میده. آزارش میده و اینا رو بخ... روی خوی اینا تاثیر میشوره. از اخطر چون این است خواهد بحر که باشند شادان به کردار بعد بگر شون دو دو کشور آبش است که آن بوم ها رو درشتی برست البته این من باید بخونم آبش خور چون درستش اینه برد. که با, با بر پسابا بگیره پسابا رو من به جای قافیه نات کردم تو گرفیش پیش شمشیر مهر آوری سرت کرده داش آشفته از داوری به ایرج میگه گرد سر کار است بپسیچ کار در گنج بکچای و بربنگ بار یعنی در گنج رو باز کن و جنگ افزار روسلی و اصله و اینا فراهم کن و پول بده سپاییان کار کن بار یعنی حرکت کن به طرف اونا برای جنگ نگه کرد پس ایرج نامور نام ور بدان مهربان پاک فرخ پدر چون این داد پاسخ ای شهر یار نگه کن بدین گردش روزگار که چون باد بر ما همی بگذرد خیرد مردم چراغم خورد؟ همی پشم گل ارغوان کند تیره دیدار روشن روان روشن روان یعنی زنده شاد روان یعنی مردیده میگه دیدار یعنی یعنی چهره چون که ایرانیان تمام بدنشون پوشیده بود چه مرد چه زن برای اینکه مو از بدن روی سفندارما زمین نریزه و سفندارما زمینی که مادر ما هست آزرد نشه باور سرها همه پوشیده بود شما در نگاره های که از ایران و باقی مونده هیچ مرد هم نمی که سرش باز باشه زنها هم همچنین برای احترام سپندار من زمین و بنابراین اون بخشی از بدم که دیده می که همین چهره بود اونو بهش میکنند دیدار به بالای سر و به دیدار ماه یعنی یک دختری بود که قدش بنده سر بوده و چهرش مثل ماه بوده در دیدار اینه کنند دی... تیره دیدار روشن روان چو به طرز خاکست و با خشت درختی چرا باید امروز کشت که هرچند از برش بگذرد بونش خون خورد بارکین آورد کاری بکنیم که یه درختی بکنیم که ریشه این درخت خون بخوره خون مردمان رو بخوره و بار این درخت یعنی میوه اون درخت تین باشه خداوند شمشیر و گاه و نگین چما دید و بسیار بیند زمین چو دستور باشد یعنی اگر اجازه بدید شو دستور باشد مرا شهریار به بد نگذر بد روزگاری نیم روزگاری که داره پیش میاد منم با بدی به پیشوازش نرم نباید مرا تاج و تخت و کلاه شدن پیش ایشان دوان بیستفاخ بگویم که از شهریار زمین ندارید خشم و مجوید یعنی از فریدون خشمین نباشید و کینه نجوید دل کینه برشان به دین آورم سزاوارتر زانکی کین آورم بدو گفت من پور برادر همی راز جویت تو سور مرا این سخون یاد باید گرفین من باید باید از تو آموزش ببینم بل. پدر از فرزند آموزش ببینم مرا این سخون یاد باید گرفت زمه روشنایی نباشد چگفت تو را ای پسر گرچونین است را بیا رای بیا رو به پردااز یعنی به پیشواز اوناور زور به درکنون یکی نام من نویسم فرستم به دانجمن دان مگر باز بینم تو را درست که روشن روانم به دیدار توست روانم من روشن الان در باره روشن روان صحبت کردیم. یکی نامه بینویشت شاه زمین به خاور خدای و به سالار چین خواهر یعنی چی مغرب مغرب یعنی اروپا. بالا چینم من یعنی سورانیان که به طرف چین رفته بودم. سر نامه کرده آفرین خدای کجا هست و باشد همیشه به جای چون این گفت که نامه پندمند به نزد دو خورشید گشته بلند فرزندان خورشید ناده. از آن کوز هرگون دیده جهان یعنی از سوی فریدون از آن کوز هرگون دیده جهان شده آشکارا بر نهان یعنی پنهان همه پ... چیزهای پنهان بر او آشکار شده همه رنج ها گشته آسان بروی بدو روشنی اندر آورده روی نخواهم همی خیشتن را کلاح نا آکند گنج و تاج و نگاه برادر که از او بودتان دل به درد وگر چند هرگز نزد باد سرد باد سرد یعنی یک سخن سرد به شما نگفت دوان آمد از بحر آزارتان برای این آزاری که شما از او بردل دارید اومد دوان آمد از بحر آزارتان که بود آرزومند دیدارتان بدان کوب سال از شما کهتر است بدان یعنی برای آنکه بدان کوب سال از شما کهتر است نوازیدن کهتر اندرخور است نهادن برنامه بر مهرشاه زیوان بر ایرج گزین کرد راه یعنی از قصر رفت به طرف راه بشد با تنی چند برناب و پیر چنان چون بود راه را ناگذیر پذیره شدندش با آینه خیش اون دو تا برادر سپه سر به سر باز بردن پیش دو دل پرزکینه یکی دل به جای برفتن ترسه به پرده سپاه پراکنده شد جفت جفت همه نام ایرج بودن در نهفت یعنی اون سپایان اونا مرتبا دوتا دوتا سرد رو گوشه هم کردن و از ایرج و از خوبی او بودان اصلاح بکنم. که هست این سزاوار شاهنشاهی جز این رو نه کلاه مهی به طور از میان سخن سلم گفت که یک یک سپاه از چه گشتن جفت به هنگامه بازگشتن راه نکردی همانو به لشکر نگاه که چندان کجا راه بگذاشتن یعنی هر که میومدند یکی چشم از ایرج نبرداشتند از ایران دل ما همی تیره بود بران تیرگی تیرگی برف زود سپاه و کشور رو کردم نگاه از این پس جزور رو نخواند شاه یعنی فقط ایلج رو شاه خواند. کن اگر بیخ او نکسد آمیز جای ز تخت بلندت کشد زیر پای چو برداشت ترده پیش آفتاب سفیده برآمد به پالود خواب پالودن یعنی یه چیزی از یه چیزی اومدن بیرون. مثلا فسونه از یک میوه آبشو بگیری این پالوزن میشه خواب از چشما پلوزه شد بیرون اومد دو بیهوده رو دل بدان کارگر که دیده بشویند هر دوز شرم برفتند هر دو گرازان ز جای نهادند سر سوی پرسرال به دو گفت تور هر تو از ماه کهی چرا برنهادی کلا همهی به ایرج میگن چون این بخششی کنجهان جوی کرد یعنی فریدون همه نزد کهتر پسر روی کرد بدو گفت که این محتر کام جوی اگر کام دلخواهی آرام جوی من ایران نخواهم نه خاور نه چین نه شاهی نه گسترده روی زمین بزرگی که فرجام آن تیرگیست آن محتری بر به واید گریست سپه بلند که شد زین تو سرانجام خشت است بالین تو مرا تخت ایران اگر بود زیر کنون گشتم از تخت و از تاج سیر سپردم شما را کلاه و نگین بدین روی با من مدارید کین مرا با شما نیست جنگ و نبرد روان را نباید بدین رنجه کرد زمانه نخواهم با آزارتان اگر دور مانم زدیدارتان جز از کهترین نیست اوین من مواداز و گردن کشی دین من خوندین نشونه سرخ جویی ایرانیان، چله خواهی ایرانیان داره. آشتی خواهی با باشتی، آشتی، خوشتی خاهی، آشتی. خواهی. آشتی خواهی. نوروزم همینه. ما الان همین رو داریم می‌بینیم تو زندگیمون. کنارمون آدم ها. لباس لباسای نو پوشیدن، صبح ها یا شرفا می‌رن طلوع هم دیگه، دیدار هم دیگه. حالا اون چیزی که ما بهش می‌گیم سله رحم در اسلام عزیز هست. حالا این چیزی که در نزد نیاکان ما بوده، این به ما منتقل شده. ریشه های این کجاست با توجه به این شعری که خوندیم با توجه به اینکه ما جهان را پر از صلح می‌خوایم آبادانی رو برای همه جهان می‌خوایم در همون هفت کشوری که شما فرمودین بله اینطوره ما هیچ وقت جنگجو و جنگ طلب نبودیم در میانه جهان بودیم و از اطراف مرتبا به ما یورش شد و همه یورش ها با کشتار ها با دشخیمی با آتش با کشتار اما ما ببینید در طی همین تاریخی که حالا برای ما معین کردن چند بار از کشور خود مخارج شدیم ما از کشور خارج نشدیم فقط یک بار نادر بود که اونو نادر هم از پوموتاتار بود رفت و به هندوستان و یک بار هم که شما وقتی که کار عظیم استاد روانشاد امیر مهدی بدی ای رو بخونید میبینید که رفتن اخامشان به یونان به تقاظه خودشون بوده ما اینجا نشستیم هزاران سال هی اومدن با ما جنگ کردن. هی کشتن. و همطور که در اون بخش از برنامه ارز کردم اولین کارشون رو بود که کتاب های ما رو سوزان. نخستین کتاب سوزان رو یونانیان کردن. حالا ما با برخورداری از نوروز و از مهر و از تپش جان طبیعت و از برحقت آویزیش و مهری که در همه اجزای جهان, جهان دیده میشه مهر میخوایم برای هر کسی برای هر چیزی مهر وقتی یک مردمی باشن که بگن که با آزار و موری نیرزد جهان همین سخن ایراجه با آزار و موری نیرزد جهان پس بنابارین شادی میخوان برای جان جهان اینجا من به شما ارز کنم که تقریبا موقعی که ما در جریان جنگ تحمیلی بودیم یک وزیر فرهنگی داشت یونان یک خانم بود الان من نامش رو فراموش کردم و این خانم گفته بود که برای اینکه که در جهان سل باشه روز بسیه که ما روز اول فروردین سر ساعت دوازد شما هر جایی یک دقیقه سکوت کنید برای صلح من اون وقت یه نامهی نوشتم بنیاد شهور تازه آغاز بکار کرده بود گفتم تازه شما دارید روز اول فروردین یعنی عید و روز ما رو برای صلح انتخاب میکنید بعد از چند هزار سال که قبول ندارید اینو و اول سالتون یک شب سرد برد و وسط زمستونه که گاگاه حرکت میکنه. این چه گاه شماریی که شما دارید و شرم نمی کنید ازش. بیایید بپیوندید به این گاه شماریی که امروز خودتون اگرچه فرزندان ایران الان توی جنگ ناخاسته هستن و توی اون جبه ها نمیتونن اصله هر بگذارن زمین و یک دقیقه سکوت بکنن اما باید بدونید که این رهاورد فرهنگ ماست. و من نوشتم که من میدونم که شما به نامه من جواب نمیدید بلکه جوابی نداریید دارید که بخواد جواب بدید باید پای فشاری روی رو رو رو نادانی و روی ناآگاهی خودتون اما با این حال چون شما این روز رو روز اول فروردین و روز جشن نوروز و ماس انتخاب کردید این نامه رو براتون نوشتم البته همونطور که پیش بینی می‌کردم پاسخ برای من نمی‌واد اما ببینید که تازه مسی که این یونسکو اینا بیدار میشن چند ساله میگن که اگر واقعا سرآغوزی برای سال باشه جشن ایرانی‌ها بده. تازه دارن بیدار میشن. حالا اگر چه خواب قفلت اونها با نکوهش از سوی ما هم راحت اما همین که بیدار بشن خوبه. یک روز جهان بفهمه که آغاز سال همین اول نوروز و جشن بگیریم، پایکوبی، دسرخانی، شادی، خورمی و برای همه آسایش همه جهانیان اون جشن بزرگ با بگی من دور نمی بینم. بلکه خواهی نخواهی در بین مردمان و اون کشورها هم خردمندان سلجوقی هست که به این ندایی که ما الان داریم میدیم پاسخ بدن. یک روزی باشه که جشن جهانی همونطور که خداوند مقرر فرمود در عبدال بهار همه چیز به جنبش در بیاد و جان جهان به رقص در بیاد و جشن بگیره جهانیان هم این جشن رو بپذیرند و بدونن که اگر تا به حال شبا کردن از این روز به بعد باید به راه درست برن. شما رادیو فرهنگ رو میشنوید و برنامه پنجره‌های رو به رو و آقای دکتر فیدون جنیدی درباره شاهنامه فردوسی صحبت میکنند گفتوجویی همون همونطور که در بخشی از این برنامه امروز که در روز دوم سال 1389 خدمت شنوندگان تقدیم میشه خوندید یک خجست باد نوروزی خوندید شما اشعاری رو خوندید هایی رو خوندید درباره نوروز ما در فرهنگمون اوزه مدت خاص این اتفاقات به خاطر اینکه اینترنت و از این رایانه و این چیزها اومده، ما از صدر ایمیل و اینا این اتفاقو به میگفتیم. اونجا قشنگ بود ما کار تبریک مینوشتیم، رو کاغذ مینوشتیم، با قلم مینوشتیم و به همدیگه دیگه تبریک میگفتیم و چقدر قشنگ جملات قشنگی بود. ریشه های این کجاست؟ ریشه های این کار کجاست؟ از آغاز از آغاز روز آغاز شد. خب این کار ریشه گرفته. در ه هزار سال است در حالا ما که اون زمان نبودیم که در روزدادها اونا داوری بکنیم ولی معلوم هست که آغاز بهار یعنی آغاز شه جان جهان با شادی هم را بوده و خواهی نخواهی مردم وقتی شاد بودن سخنران شاد به بدل می شده و اون شاد ها سرودها البته اینم به شما کنم که یده و استاد هستن که میگن ایرانیان از عرب سرود رو گرفتن اما یک محری پیدا شده در چاقومش خوزستان که متعلق به شیش پنجزار سای پیشه روی این محری کسی نشسته روی کرسی و جلوش خان هست کرسی یعنی صندلی و خانم یعنی میز و یک کسی داره از این پذیر میکنه در اینجا سحنه شادمانی نشون میده که یک کسی نشسته و در چنگ میزنه و یک کسی داره زرد میزنه و یکی هم هست باید دو تا نای شاهمانند با این آکورد میگیره و یکی هم روبروی این نشسته روبروی این نشسته و دست گوشش گذاشته به هر ایرانی بگی که این تا رو چکار میکنه به شما پاسخ قادر داره آواز میخونه بس. خب این یه معما خیلی خیلی شگفته من بارها بارها عنوان کردم جوانان ایران نتونستن جواب بدن حالا الان اینجا عنوان میکنم از این منظره ما چی، چه نت واسه شما چه نتیجه‌گیری؟ این مجلس، یک خوب یه... نه، از این مجلس ما چه نتیجه‌گیری گرفت؟ یعنی چی زمانی هست؟ نه، زمانی که متعلق به پنج سال پیشه. این چرا این جشن به خاطر چی هست؟ ما جشنه. ببینید حالا من نمی‌خوام دیگه وقت شما بگم رادیو رو بگیرم خودم ببینم میدونم که این موضوع با این که خیلی ساخت اما خیلی خیلی عجیبه. این کسی که دست‌خودش رو گوش داره، آواز می‌خونه، با کسی که داره ضرب میزنه یعنی چی؟ یعنی آواز آهنگینه. یعنی شعره یعنی 5000 سال پیش ما شعر داشتیم وزن داشته این با آواز همراه بوده با این ضرب داشته می خونده خوب وقتی که ما 500 سال پیش شعر داشتیم بیگومان 8000 سال پیش هم که خود در حقیقت نواب و اون واق که حالا میگن موسیقی پیدا شده در ایران با شعر همراه بوده این است که خوب جان عاشقان بیدار میشه و به شعر و ترانه‌سرایی میپردازند و خب بهترین شعرها رو برای نوروز شهاره ما گفتند خیلی لطف کردید آی دکتر فریدون جده ایدی از اینکه به برنامه ما آمدید انشاءالله همیشه اید باشه همیشه شادی باشه برای مردم ایران و نوروز همکه جهانیان و جهانیان خیلی لطف کردید خداحافظ شما شاد باشید پیشتر از اون که من بدروز بگم یک رمز خیلی شگفتی رو میخوام برای ایرانیان با که. ما اگر آرزو کنیم که کسی دیگه بر کسی پیروز بشه هیچوقت اون شخص براش خوشبایم نیست اما ایرانیان در یک جمعه شکر میگن نوروز بر شما پیروز و ایرانیان از این به میگیرن نوروز بر شما پیروز یعنی شاد باشید روز کردید خداحافظ شما مردم همه دوان سرزمینم خداحافظ